الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن الله لغفور غفور رحيم بو توجبه وقت و سردي هوا در قسمت خاهران بلوطان مزاهم اوقات سروران و عزیزان را فقط تقدیر و تشکر از سروران و عزیزان دارند که از عصر تا ساعت حدود نه شب تحملش کو و گرما و سرمایش تحمل کو و مشکلاتش بخاطر پاسداشت قرآن عظیم واشعن متحمل بودن. الله سبحانه وتعالی انسان را عزت و شرافت و سربلندی نصیب کرته شرافت انسان بخاطر پاسداشت قرآن عظیم و اشأنند یکی از های عظیمی که الله جل جلاله بر امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ارزانی کورتا نعمت قرآن و انت نعمت الله لا تحسوها نعمت های خداوند متعال قابل شمارش نهند و نعمت قرآن نعمتی که الله سبحانه و انسانا انسان را نعمت از سایر مخلوقات متمایز کند عزیزانی که از عصری احتگن به خاطر عزت و شرافت قرآن به خاطر عزت و سربلندی قرآن عظیم جای تقدیر و تشکر ها از سروران و عزیزانی که از دور و اطراف استان تشریف جیارت و تشکر ویجه از استاد محترم حضرت مولانا سید عبدالسمد سعاداتی که به دعوت مایل و, و به جلسه حاضر کو و مننت بر سر مایل کو خداوند متعال توفیق عمل خیر عنایت بکن و بر توفیقات حضرت مولانا افزایش بدن تقدیر و تشکر ویژه ها از مولانا حافظ احمد گوهره کوهی با توجه به مشغله کاری باز هم به خاطر پاسداشت قرآن عظیم و شند تو در جلسه ما شمای شرکت کو و از پند و مولانا استفاده و کنین تشکر ویجه از جناب مولانا عبدالکریم حسین پور خلف صالح حضرت شیخ الحدیث رحمت الله علیه که مروچی <محلوشی> بوی حضرت شیخ الحدیث با وجود مولانا استشمامبید تشکر ویژه از جناب مولانا حسین گرگیز نماینده و فرستاده حضرت شیخ الاسلام که از بیانات شیوا و زیبای مولانا کمال استفاده این بو از علمای شهرستان خواش مولانا عبدالسطار حسین زعی با حیعت همراه مولانا یعقوب حسین بور با حیعت همراه و سایر عزیزان مولوی رحیم بخش که از پشتکوی خواش یهتر با حیعت همراه کمال تشکر و قدردانی ها از بزرگان طایفه جناب سردار یار محمد گمشازهی و هیئت همراهی که یحتم و قدمی رنج فرماین تا کمال تقدیر و تشکر دارین جناب حاجی خدا سیامک ایسا زهی ریگی با هیئت همراه و عزیزانی که از زاهدان یحتگن جناب عطا محمد ریگی حسین با هیئت همراه که در مجلس ما شما تشریف دارند و هر سال به نابر پاسداشت قرآن عظیم و شنیاین در جلسه شما شرکت اکنند خداوند متعال توفیق عمل خیر انایت بکند تشکر ویژه ها از مردم حششک روستای حشک که این جلسه با همت همه برگزار کنند بود مخارج این جلسه از شهر سراوان و خصوص از مردم روستای حشک از شورای محترم حشک و در رس آوام جناب آقای محمد نور حسینی که مدت یک ماهی که همراه با ماهیم برای برگزاری جلسه از دهیار محترم و سایر عزیزانی که ایدان زحمتش کشته خدمتش کرته به نوعی کمال تقدیر و تشکر ها و عزیزانی که مروچی شاوان تجلیل بیت خدمات ارزنده جناب حافظ عبدالغفور و همکاران آیند که کمال تقدیر و تشکر از جناب حافظ دارین که زحمتی کشته و از عزیزان حفاظ در یک روچی کل قرآن عظیم و شنش تحویل داتا چه یک ارزشی که خداوند متعال انایت کرته و تشکر ویجه ای ها از سرور محترم و پدر بزرگوار جناب مولانا احمدالله نصرتی که با توجه به کسالتی که باز هم در جلسه ما شرکت کو به هر حال خداوند متعال توفیق عمل خیر عنایت بکند از نمایندگان ادوار که در جلسه هستند جناب حدایت الله میر مرازعی حاج حدایت الله میر و سایر عزیزان خداوند متعال توفیق عمل خیر انایت بکند و در پایان اهدایی هم بوده سرورانی یک سری هدایی برای حفاظ در نظر گفته جناب محمد اسحاق حسین از روستای هوشک هدایایی به سروران حفاظ در قالب پول نقد بشان اهدا کرده که به آوان تحویل ده اگه بند در پایان جلسه جناب مولانا واحد بخش شنبزی هدیهای نقدی به سروران و عزیزان اهدا کرده هدیهای مولانا حقانی مسئول نهاد رهبری هم اعلام کو که ما به سروران و عزیزان اهدا وکالین که جندی با توجه بشی که مشغله هستد و مهمانی داشت از اوستان نطون در جلسه حاضر بیت. در پایان کمال تقدیر و تشکر کنان و معذرت خواهی کنان عزیشی که جای شما تنگت و سروران و عزیزان تکلیف بوتند همچنین خواهران محترم که سردیش تحمل کو و تنها چیزی که توانین به شما اعلام بکنین جزاکم الله خیر و آخر الحمد الحمدلله رب العالمین